ما بدین در نفعی حشمت و جا آمده ایم. از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم ره رو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به هشت به طلبکاری این مهرگیاه آمده ایم با چون گنج که شد خازن او روح امین به گدایی به در خانه شاه آمده ای. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ای آب رومی ربد ای عبر خطا پوش ببا که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم.